الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> وصلى الله <سؤال> على سید رسول الله و آله و اللهم از الله فرموندن داره بفی وجوب مطابعت رو پرد و لزوم الامل ازا تحت, تحت مادام مدیده لأنهو به نفسهی طریق و نهد الواقع از شد که در جشد دو مطلب رو فرموندن مطابعت رو و لزوم الامل. و بعد این حقیل رو رو گنه به یه مقدار عبارات اعلامی که بعد از شیخ آمدن خونده شد، توضیح داده شد. مثلا مرموم آینایمی حجیت و معنای طریقیت در کلام شیخ درده که مراد از حجیت قرد طریقیت قطعه و این هم ذاتیست بلکه ذات قردن است. گفتیم یه مقدار توضیحات بیشتری در کلام اعلام که بعد از مرموم شیخ آمدن فخص بیشتری بشه تا نتیجهناهایی میتونیم بگیریم. مردم محفق ثنااحه راه می ال ما فینا های که تق به وسیشان است. در همینجل سه تاحه شش به بعد ایشون به سا درقال و خودشون مقصدد و جهت او لا و لاش رو وجود مطابق به قطع اقلاً. همون اول عبارت شیخ رو تو وجوب المطالبهون آوردن نه لزوم و نه نه و شماها رویی که مثلا تحریرات آخر عمل ایشانه خب خیلی دقت و درافت فوق العاده ای رو, بکار بودن. از شیخ رو از به کار بردن هر کلمه‌ای یکی متابعتو رو کرد یکی لزوم در نه علات رو به لنغو بنفسی که ول در واقع دار و توضیحات به کلام مرحوم آیه محقق نایمی و مرحوم از سای گذشت ایشون اون لزوم و رو نواردن وجوب متابعت قد اقلا همون که اول کلام شیف رو لاریده لا ریده لا شب وجود وجوب متابعت قد اقلا قد و همین نقرار حالا چرا و لجو فیه ظاهرون و شبیه مرمونای اون تعلیل رو بردن سه این نرقص من جهت کمی کونهی و حقیقتیهی اینن که شاق الواقع به کشف تان این همون نقصه به نقصه تریفیت گرفته البته اینجایشون ذات امردن در میگن ذاتی حالا نمیدونم شاید یه در تحبیر باشد به حیث و نفس و واسم الواقع اضافه رو به او به حکم من الاحکام یکمونالخ سببیت و تامه این سببیت رو که به اطلاع سببیت یعنی منشه اتنجزد این رو تام میدونه اینه ای نقطه لحکم العقل تنجیزن مرمون آیه محقه ارادی اون نکته تنی رو در اونجا این, این میدونیم که هر ذاتن به معنای انکشافه و وصول الادوارده نهیستی که انسان سر از واقع رو میبینه و اگر به حکم تعلق پیدا کرد انسان قرد پیدا کرد اینجا یک حکم عقلی میاد این حکم عقلی تنجیزی این حکم عقلی تعلیقی میست این رو خیلی به استدار مرمون محققه اراحی روش نظر داره یعنی سر خودیگه و منجزیت رو سببیت تامه و حکم تنجیزی عقل داره شما شما واقع رو داریم میبینیم شما داریم حجوب میبینیم این وجود برای شما دیگه تنجیبی شده تعلیقی نیست حالا این مطلب بردها در شرح ایشان روشن میشه. پس در حقیقت ایشان نکته رو این میدونن یک نکته اول در کلام ایشان چون کاشفیت این اضافه حقه طریقیت این اضافه حقه تا قطعه انسان تیدا کرد حکر رو میبینه تا حکر اون وجود متابعه هست که انسان مطاربه از بکنه حکم عمل از پنجیده این عمل در اینجا نمیاد می توقف بکنه بگه بر تو اطاعت واجبه تا شاره دیگه. بدون اون حرفیه پدر رو از خواسته انجام بده یا حالا که قرد فیضا کردی تا وقتی که پدر الیزامت نکرده انجام نده نمیشده اگه حکم فعلی مگه حکم تعلیقی باشه اگه حکم فعلی ای مثلا از این مثلا شعار است و مثلا فلزی به دستور شما اگر هر کردیم کردی مختلفه در. مرحله سنجیشان تو حکم عقلیه بعد از وقت میشه خیلی میشه چنین چیزی. اون حکم عقلی میشه چنین چیزی. حکم تعلیقی نمی‌کنه. عقل نمیگه اگر بعد از قطع تو پدر خاصه و اینو. خاص وقتی خاص دیگه فهمیدی پدر خاصی، خب بدون بخری. دقیق می‌کنه. پس اگر یعنی باید اینو بفهمی می‌کنید. اگر ما علم و درست فیدا کردیم یک حکم فعیی که من فعلا این حکم رو دارم بلا خاصل حکم عقلی تنجیزی یا که انجام بده اون نقطه دیگه حکم عقلی ت... تعلیقی نیست در اینجا تنجیزی لحکم العقل تنجیزم به وجود مسابقه. اون وقت ایشان اگر درقت کردیم با دو مرتبه کلمه وجود متابعت را بود هست که مرحوم شیخ در عبارت می کنه لا اشتاقی وجود متابعت قلقه و لعمل علاوسته بعد از کلمه عمل بابردن آیا مراده مرحوم شیخ از متابعت اینه و لذا مرحوم آزو جدی در علامات تقریب در مبارد بحث رو که رو تنجد در سبب صورت ذهنی ما سبب تنجز میشی یا نه مهما آزیا یه نکته لطیفی در ایشان ایش همون آنوان حجوب که شیخ از برون مقام شرح وجود المطابعه میگه این حجوب المطابعه دو مرتبه داره یک مرتبه وجود المطابعه که شما تحریک ایجاد بشید راه می‌افتین اراضی متعلق می‌دونه که این کار مورد ارا انجام میشه اینه ما. اینه که علاوه بر مصالحه، مصالحه خود عمل خارجی است. مثلا شما وقتی تخمینی مطرح کنید که پدرتون خاصه 15 سال هم بفرینید یکیش اون اراده یا به اصطلاح این تنجس چیز اون تحریک اراده شما این یک مرحله است. یک مرکب این که عملا داریم پنج کنون رو بقیم در چیش رو بیگه این وجوب متابعت یعنی چی؟ حالا اینجا شرم این وجوب متابعت اون عمله یا وجوب متابعت که عقل رو بکنیم مرحله اوله که شما نستن ارادتون رو تبایراده ایتدار اراز بکیم و راه بیوکیم یعنی دایی در که راه نه، دایی در شما ایجاز بکنه ایشون میتونه وجود وجوب به معنایت پس دو مرتبه داره طبیعت اراده تشریعی دو مرتبه داره یکی ایجاد اراده در شما بکنه یکی که عملا اعمال انجام بودیم در مقام خارج عمال انجام بودیم ایشون میگه وجوب مطابعه هر دو میگیره خوب دقیقه نصیفن نیکنه آجام وجوب مطابعه هر دو میگیره این اینکه یکی رو ایشون عقلی میدونه یکی رو ایشان قریضی میدونه یعنی فرق بسه بعد ایشون میگه به وجوب مطابق علام معنا از اول از کردم وجوب المتابعه رو معنا نکرد اینجا شو میگونم معنا کردن از معنی وجوب المتابعه وجوب مطابق المتابع علام معنا حکم عقل. به لزوم سرک و ولی ارازه نه به انتصال امر المولا تو ارازه ته به اصطلاح تبع اراده مولا حرکت بکنی سرک اراده بکنی اراج ایوان، الیه ایوان، به همین حکمم برمید حکم, حکم العقل به حسن الاطائه و قبل المخالفه. چون عقل حکم میکنه که احترام مولا حسن و مخالفتش خریده پدر یا مولا یا قانون هر چی این یک معنای وجودی و یک معناش هم لا به معنای حصول حالت الانقضاهیه مثلا در انسان اراده ای که بهش محرک اقلانی عقلانی ل لجری ال العمل علاوه است اینم یک معنا است در ایشون جاهران اسلام ور میخواستونه عبارات شیخ رو شرح بده از این اینجور کنم لا اشکاله که وجود متابعت بخش ولی عمل حلا سبقه بعد از وجود متابعت عمل رو بود مرموم آزیا بیگه نه وجوب متابعت که عقلیه این وجوب متابعت رو دو جور میتونیم معنی بکنیم این که سرکه اراده شما به اینقدار اراده شما بوشی به امتصال امر و مولا هم پدر امر دولت امر و قانون دوم اینکه در خارج این عملت انجام بودیم این مطابعه موجب محضرک عقلانی باشه برای عمل خارجی ایشون میگه لا به نه به معنی عمله لانه مثل ها در معنی اندن که الواقع یک شما در وقت واقع رو دو و تحلق سهلیت الغرض به حرک نحو المخصود فعلا غرض مولا تعلق یا شده که در تعلق یا به ایشانان بخویم این این تعلق غرض فعلیه یعنی این تعریفی نیست متفرق بعد از این دو تا مقدمه این معنا امران به قهر الحصول ایشان اشاره می‌ذارم بین عمل و بین صرف اراده در فرد در مطابقت مولا یعنی طاعت مولا اون تاعت رو به اصطلاح حکم عقلی تنجیبی می دونن. این یکی رو امر قهری می تابع تابعه ارازه می به اصطلاح اراده خارجی انسان در قهری الهصول و تحقق به مختصا الجبلت و الفطره و مثل او غیر مرتبتن به مرحله تحسین و تقریع عقلی که مهیاره در اطاعت و امقیاده تکالیفه ولی را ترا جریانه او این امر قهری به نسبت الى غیر الانسان من اصناف حیوانات ای زن. در حیوانات هم این حالت خیره داشت البته اون نفرمه ارز کردیم بعض دیگه هم نوشتن دوانش ازش این تطور این مطلب ایشان به هر حال اون که ایشان میخوان بفرمه یکیش برمیگرده به قوانین و حسن طاعت و اوهی مخالفاً اون اراده صرف اراده شما باید انقیاد بکنید امری که مولا گفته انجام بدید این این مرحله این میشود که مطابعت در اینجا الهی یه مرحله ای که شما عملا انجام میدید چیزی که عملا نمیدین نانه فرض در ایمان این رفتی به ترجج نداره رفتی به انقیاد نداره رقی به حسب وقر عقلی نداره این نان مقابل شماست این جریع عملی حالات قلقه این اصلا تحریه این وقت ذاتی نیست این معلوم به کشف نیست این در حیوانات هم هست حالا نوزه موردشون در حالات تحقیل کردن در حیوانات مگر این که مثلا میگرن تا گرچه شروع به گوستان آمد هم بدون کنم پس منوشه قطع از برای از خجه کنم و الله تصویر این مثلا مخصوص چون حیوانات درجات مختلف حالا خودشون هم هم به ما و هر حال ایشون میفرمده اون محرک اون تحریج خارجی اون تحریج خارجی اون بحث حجیت درش مطلح نیست اون حقیق ازن اون وجوب متابعه که ما میگیم اون مطلح حجیت یعنی شما وقتی قصد بدایی کردین که مولا خواسته شما باید خودتون رو ارازتون رو نیروتون رو ترف مکنید در ایجاده مخصوصاً مولا مادام تکلیف فعلیه این اراده در شما ایجاد بشه. ایشان فرصت این اما با شما ظاهراً فرضیه شما. اونی که ایشان به ذهن اون مرحله اون است که مباشره مال حس مشترک یعنی فرقشونه گور یا بوسنی مقابله است. اما حالا گور رد میشه صدای بوسنی از ایج جای میشند یا سریع موش باج است یا سریع گور باج. دیگه مگه قطع پیدا کرد بوسنی؟ حالا چی؟ آخه ماه بحثمون در قطع مون که هم میشه. خیلی بحث بحث اما غیر در در حیوانات هر قطع وجود داره و تبرو این قطع عمل میکنه می جرند پدر تراشیده. این ماله هست این هست مشترک بکن نا اون بحث من هم اینه اون که میبینه دقیق بکنی اونی رو که میبینه اصلا از بحث. چون در بحث خرث رویت تنها کافی نیست ولی ما به مقدمه ها سیدش که ببینیم که یه دست مقابل پدرش پدرش میبرونان بخاره که این بحث نیست که مراد این است که دو نظر گفتن بودن پدر دو قرط برش یعنی ما رو کاشم نه از قرط میاد بعد از این تشافت میاد این در ما تابع اتفاق قرطه اما در حیوان اصلا این تردیل هستی من نمیدونم من میگم خبر ندارم اون حس مشترک، تا بی چشمش افتاد خب خب خب خب تا چشمش اختاز برد چشمش اختاز بردیل این تشافت قبرش خیلی از اونه که قبرش مستنده قبر خیلی از اونه که, اونه که. درد. درد. این, درد. این, درد. این درد. که من از کجا او قبر زاریان نداره میونه مثلی انسان در, در حیوانات حالا فراسیم مثلا گرگه نگاه میکنی بودسنن نگاه میکنه یه افر چوپانان ها دو سا سگر موجه ایز که داره که حرکت نمیکنه که اینکه اینطور نیست که تا قبر فیدا کرد حرکت بکنه نه عمل رویشان سرخول غرز رو ایشان. در معنی اول گرفت اون میگه مال انسانه دوبومی که عمل باشه میگه تو حیوان آزی و اعراضش که در اول که سرخول غرزه این معنی هجیه. این میگه مال انسان مضافت ما از کردیم این معنا که این فریضی انسان باشه تا غرف خدا کرد حتی اگر غرف مستقیم هم باشه حتی اون در انسان قبای دیگری هم هست فقط صورت ذهنی که نیست که یکی از مواجیگر انسان قوه رن قوه رن دارش تطور رو و قفلش عمل ندید اما یکی از اون اون عمل رفتی به آدم ها با جایی یا نداره این باقی از برسی ایندار که بیدن کامل شدیش نیست یا بیدن قرار و در حاله بیدن اشواده در تحبیلی خب اولا اینا آیان بحث تحبید. چون الان انشاءالا بعد که اینکه حرف من رو آیه سوانه و بعدم من رو مستاد رو اونجا حرف میکنم اینها دقیقا نهشتن اون معنای خود که کرده تو اشاره دارم واضحه که ایشان ترشیم داره که آیا معنای خود همین عمل خارجی این. این اگر عمل خارجی باشه این آزتا یک حالات انفرادیه انفراد اصلا فردیه. لذا خواهد که م مردم آرخویی میفهمند که این که میگن مثلا که اغلاییتون نه ما قبل از اینکه از زمان آدم و که هیچ چطوری هم نباشیم حجیت قرض بوده آرخویی حجیت قرض عمل کردن بدونن دیگه اون چیزی که در حالت فردی ما وجود داره بیدیم که کورزه زندگی کنیم چی نباشه این دستور عقل آزی همین دستور عقل نیست. قریبیه. جبلیه. این عقل آزی عقل من اگر زنیست نجا نان برمیدارم میخورم برای سیرشه این دستور عقل نیست. این جبلیه انسانه. دیدم گلی هست و امراه گوش میکنم. این جبلیه. آزی باید همینه. این حجیت نیست. این لزوم مطابعه نیست. و شدون. حتی با آزی آهازی ها ما خود این عمل برسیق به این فکری شماست این رفتی به خط محق نداره جز احکام عقلی حساب نمیشه روشن شده پس ایشان ایشان ولی ایشان میاد توضیح میده از کرد این توضیح ایشان در کلمات مرم نایلی نیاره ایشان میگه آزان دو مرحله داره یک سرکل قرضه یک عمل خارجی خلاصه مثل است، ترکل اراده سر ترکل قرار باشه این جزء اولیه است و همینکه مطابق از آقای به هر دو معلم گفته میشه هم در ترکل قرار داشتن مطابق که در حیاتشون با این کارشون میخوام کلام مردم شیخ رو توضیح بده از سر کننده می‌کنیم کافی نیست در توضیح کلام چون شیخ اولینیم اینطوره لایش کاله تو وجود مطابق از و لزوم عمل عادت بشه ظاهر اولیه شیخ کیشون وجود لزوم لازم گرفته. ظاهر روازوشی خیلی طبیتیه آزیان مخاطقه نه اون لزوم مال اون مال حکمت فطری انسانه، جبلیه انسانه، اون ربطی به حکم عرض در باب حکم تنجیزی هم که تو باید اطاعت مولا بکنی ندار که ها خلا همون میگه اون منجزه مال سربرقرز به تربیرین چا یا به تربیر بنده ایجاد دایی مثلا آه دو مرحله کرده این جلیه وجود عقلی به مطابعت قصد و اینکه که عقلی کنند چند باختونه کنن. عباد و شکلی نزا وجوب مطابعت قصد و لزوم لعمل علا لزوم و لعمل خب ها، که عمل کاری دیه، عمل اما در کالجیال وجود آبزی و رو این عمل رو خارجی عمل عملی که انجام می‌دهیم برطرف کرد. عملی که میخواد انجام میگه عمل بکن. عمل بکن. این عمل کردن شما برطرف کرد. او این بیشتر می‌آید. نمی‌خواد عمل بکن عمل عمل قابل میشه عمل میگه نه اصلا نی. نیست لا لا تمام هر وازیان نخود دیگه و به جمله محل کلام فالمقام انما هو في المذهب فی اولى یعنی سببیه القدر له حکم العقل تنجیزا بتحسین یعنی این کار حس چون این مرادجه از حسن در اینجا حسن حکم عقلی نه عقل عملی چون به جامعه برمیگرده عقل میگه که شما باید سرف بکنید اراده مولا را نه به انتصال امر مولا این اراده خودت رو صرف بکنید نه این میگه سببیته و الا مرتبه سال اخیره مرتبه اخیره که عمل باشه تابعه اصلا لفعلیت قرز المتلم. این به مطلب میگه به صرف ارادت این نهر تا اثر الانتصال فه انتعلقه بعد از اینکه خودجه شده بعد از این که اون به من آمد که و باید این کارو بکنی اون وقت به انتعل دارهطر از هوفعلی مکللت بدانه که انجام بده یا حقق قرار به مخصل جبلده یاعتحقت طکر حالت باعث الژ گرفت عملین احل اگر بنا شد امتحصال بکنه اون وقت این محرک عملی بهو علاق قراره خلاصش مرموم آزیا قدر بسید لاغمسته از کرد این مخلوق رو مرموم آزی برو جدید یه مقرار به لغت بیشتری نوشن بهدهی نوشن و بنده یه توابو تنسیل به تحبیر دیگر یه کردن روشن شد که مرموم مرمو آزیا یک مخلوقی رو کاملا متفق شدن انده من کلام بیدم در تعبیر ما گفتیم اونی که موجه به تنسیل تکلیفه دائما صبر ذهنیت بحث اول این است آیا این نحله صورت ذهنی منجز است یا نه یعنی بحث ایشون است که در مرحله اما بحث دوم که من انجام بدن یا نه این رأفی به عالم غث نداره این رأفی به عالم حجیت نداره واقعا میشه این رأفی به عالم حجیت نداره طفی به تعبیر ایشون و لزوم فرض هم نمیکنه اگر بحث حجی یا معنا شد فقط اختلاف ما با مرموازی هایی میگه اگر این صورت آمد این سبب تنجزه تماما دیگه تعلیق توش نداره ما هر طرح اون اینه که چون صبر زهنیه و سولا قابل ارتباطگاه و با خارج میستن روی این جهت مولا میتونه تعلیق رو زنه. قانون میتونه تعلیم بزنه بگه این سوار ذهنی از این سبب باشه این سوار ذهنی از این سبب باشه شما اگر از فیاس قد فیضا کردیم تنجز نمیاره بر. پس خلاص ای برد پس روشن شد مصیبه. این که منوار بروزی در همین همینطوره پس ما یک بست تریجیت قصد داریم یک بست لزوم متابعت به سرگیشان قصد از کجا سنسان، سنسان؟ بس. بس. من بلیم نیستن اما این این چه شما زیر می کنی اونا چشم چشم <له> نه اوها به اول مدعا روشن بشه پس در حقیقت مرمازی ها چون عبارتش شیخ مهمه لا اشکال بیوجوب مطابعت قصر وله مهمشید. مهم چیز؟ مهم این که شهر رو به اصطلاح حجیت بزنیم حجیت به معنای عمل بگو لزوم، عمل علا سبقه قرص میدن حجیتش رو از این تحضیب حجی ذاتی نکرده و این حجیت رو لزوم عمل میدنه من اینه که حجیت قرص در بحث حجیت آیا همین عمل یا نه آما این مطلب تنبخ بدای کرده اصلا من رو بروجه به یه لوقت با بله که زبانی سنده بود پس آزیه بکنم که مرتبه اخیره اونی که مرتبه اخیره که حمل باشه این مراد می زمان احناتی در مقابل در اون مرتبه اولا ترت اراده و غرز این مراده اونی که در باب تکالیف هست اونی که در باب قانون هست اون ترت اراده و غرزه یاد تعبیر دیگر حالا آن تحبیر رو نکردن من تحبیر شما تیم شما برگردن نوزن بگی اصولا تکلیف یعنی چرا این شبه پیشانش ما ممکنه سوال بکنی چه طور شد این شبه پیشانش یکی فضل اراده رو گرفته که عمل گرفته این نقطه پندیشتیه از کن این و قام و جهل قام این دارای قررده مثل بقیه افعال انسان فر این نمال کلام این, این تغییر بندرسیش رو از این آن ندارم این خرد دو تا خرده نه یکی وقتی شما بیم فصلی به این شخص میگیم چای بیا در باز دو تا خرد هست نه یک خرد هست یک خرد اسمش خرد عدناست اون نزیکه اون خرد عدنا ایجاد داعیه ایجاد اراده است. چه؟ چون هم گفت به حسام ها به فاصلی وادار کردن این قرض از آن هیچ هیچی وقت از و جلا نمیشه این همیشه دوبالونه تفکیت نمیدونه قرض دوبالون بشین قرض احساب اونم علت قایی اون علت قایی دویه چیه تحقق عمر در خارجه که اون در رو باز بکنه روشن شد پس هر تکیری فیدرو تا علت قایی داره محلومی اطلاح, شد. اطلاح شده روشن شد پس شما دو تا قرص داریم آغازی ها در حقیقت و رو و باکه به تقبیر رو نفرمونده آغازی زیاد داره میگه قرص ازنا داریم و قرص اقسا داریم اون قرص ازنا به تقبیرشون سرخ اراده امکنی در تکالی قرص ازنا تخلق نداره قرص اقسا تخلق داره وقتی گفت در رو باز کن اون قررز ادنا که ایجاد دایی باشه در دا همین شد تمام شد اما قررز افساد که در باز کردن ممکنه بشه ممکنه نشه اون قررز افساد سخلص داره ممکنه اون شخص در رو باز بکنه ممکنه درم باز نکنه پس بنابراین اونی که اینجا آمدن آمدن آن مفرد کردن باید اینجوری مفرد بکنن سببیت قصد در کدومیه یکیه؟ در قرض ازنا یا قرض اقصا؟ این تعدیمون هست تعدیم آزی ها بیده این اگر شما قصد پیدا کردید در حقیقت آزی به این تعدیم آنه همونست آقای همینه لیکن من به یک تحلیل دیگر یه قدمتون هستم بنده که مطلب واضح تر بشه در حقیقت میخواد این نکته رو پیدا بکنم قد در اینکه که میگن قد مثلا اینکشاف داره این اینکشاف قد تحصیل در کدومی که از این دو سبق قرد میگذاره در قرد در که اجازه دادی باشه یا به تحبیر آبیا سرخون قرد سرخون قرده باشه یا در قرد در احصاک تحقاق عمل در خارجیه <متحن> میدونم تفعه مکلد الان که آمد تأثیر قضی مکلد نسبت در قرض آمد کده ما اینو بخیر بگیم نصفت قرض ادناس نه قرض اقصا اگر در قرض ادنامه شده نسموش خودجیت خجیت خود به لحاظ قرض ادناس نه به لحاظ قرض چون آقای ها ننشته آین آیین ننشت. من براورد این مطلب بعد از دروس دیگه یاله پس بنابراین طبق تحلیل و اصولی ما معنای حجیت قصد تاثیر قصد در قصد ادنا یعنی واقعت او قصد ادنا محقق میشه اما مساله قصد افسا که ایجاده ظاهر عبارتش ظاهرش تأثیر این مصابقت در قصد افسا اصلا هر چند زمان ما خیلی یک وسوسه و تا بزرگان اگر بزرگیمی باشد که از ما رانی با این مناقشه خارجی افتاد. ظاهر این ابادت داده شکایتی نزول موج وجود مسابقت در این وجود مسابقت باشد ولی عمل آزاد که انسان آن قرار در عصر، اما عمل هوایی آن در من کنم با این بیان. هر فعال بروجهگی هم بخونیم چون توضیح خودم رو عمود ارز میکرم اونی مخواستیم ارز رو کنیم جراعدل بخواه عبارت بر آی بروجهگی هم بخونیم اینا هدفشون این بوده یعنی اون واقعی روشنشون اون واقعی یکی رو که میخواهد بفهمن میخواهد بگن به لحاظ این قرضه از نای آمره تو قصد ایدار کردی این قصد ای تو کافید برای این جاد دارمی دیگه تمام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 یعنی مایوج و بر... یعنی مایو تحق العلم یعنی مایوج به تحقق هر کردم چرا نه به خوب دایی کی شد عملی که قطعی نداره این داره داره اون که مال بعدشه عمل بعد مسائل داره تضاحم داره اون مساله عمل که مرحله خودشه <تصال> میگه من کاری کردم میگه من به وسیله قرض اجازه تو قرض داشتی پس این برای اجازه کافیه چرا عمل نکردیم روشه که لو این تقریبا به می میام دیگه تمام این اوهام رو با این تقریبا اخیره ما بدار نقطه بید. فنی در باب حکیت مسئله خیلی مفاهاتو بودافتادگی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 یه دزناهات نکلاب رو شنیدم داریم دوست داریم مخزن از یه مخزن. این دهان؟ اینکه این دهان باوری. این دهان این دهان باوری. این دهان باوری. این این این نه کافی تو اینا به حال تو قرد داشتید پس میتونی احتجابی یه نفت مورد احتجابی میشه؟ نه نفت قرد که حالات امتقابی اینسانه میگه تو دی... من رو نایمی مجه... میگه میگه تو واقع رو دیدید پس احتجابی احتجابی برده اینجوری احتجابی شه نه که باها دانه نسی احتجابی شو ببینید همون هر بگید ویروز آیا در این بعد مثل مثلا که از هاشی بر رم نایمی خود ایشون برداره آیا ایشون در این سطحه بعدی به عنوان ایغاظ داره که من از کردم در اینجا سطحه هش آخرش ایغاظم که لا انل آثار المترتبه عل قدم موجود نحوه سائب کاند آثار لنفس قدم بعد ایشون لا انها من آثار المسطوق والمرگ به وجود الواقعی که ما وهم مراد ایشون از متدرخم مع زیرود اعبایت نایی میخوندیم از طرف از حاشی مما آزیا اون حاشیه از حاشیه که ایشون دومد رو آمده اون حاشیه رو ایشون شرهم که بیسه آخر بحث هشت تا نو یک طرف اونجا شعر داده در اون حاشیه ای که بر طرف اونجا شرح داده اما اینجا تر دارن کیف ماکان اجازه بفرمایی بعد ایشون بگه وعلا کل حاله فبعد عرض در ج بزا. و طریقیت ذاتیه و تو اونجا میگه ذاته اگر میگیم تسامح دارن در طریق لغت اون ذاتیه میشه سبب و تامون لحکم تنجیزی لعقلی به لجوم متابعه میگه این جهت ذاتی منشع میشه برای حکم تنجیزی عقل حکم تنجیزی عقل چیه اگر مطلب واضح تو انجام بدید باید ترد ایران این حکمی پیشتی و حسن تاعت فی المرحلت این اولا این مرحله اول ولی تحققه حرکت نحو المخصود فی ظرف تعلق الغرض الفعلی به تحصیلی فی المرحلت الاخیره اون از شما که جایی بردون ایجاز شد ببینید مضاهم داره نداره کارها که تمام شد بعد از اسیان مقدمات با اون انجام بدیم پس ایشون لزوم المطابعه رو از اون مرحله اولاد تا مرحله اخری در نظر گرسه ما اون اینه که حجیت قرمال مرتبه اولاد اون بقیلیش رو باید خودش انجام بده چون وقتی تکلیف برو آمد. تاثیر تأثیر در مرتبه اولات میمونه این حکم تنجیزی و غیرتنجیزی بند ایشان وارد بست مفصلی شدن به دیگه مجرومی فرزاد بست میزه از فکر کمی خیلی زندگی گرایی شدید این جیری ایشون در مقابل چی گرفتن چون سوره قر اشیا داده ها این مال صفحه بعده اما اینجا من میگم ایشون میگه اگر ما قائل شدیم به حکم عقل که زن حجت در حال انصدار خب چرا زن نقیاتی حجت نیست ایشون نقض خوب چون دین عقل و عقل قضا چشه سوت اونجا در برای انصدار به حکم عقل هم زن حجته چرا زن نقیاتی حجت نیست ایشون فارق رو این میدونه حجیت احقا این تجیزیه حجیت زن تحلیقیه این نصف شوید یعنی بنابراین صدا در جایی شما نرکانیم به احکام برسیم زن حجیته لیکن به شرطی که شاره نهی نکنن ما البرمشید و نظارشون در باب انصدار هم اگر میگن اونجا با حکم عقل به حجیت زن اونجا هم تنجیزیه اونجا هم زندگی ها پس به یک مثال بزنیم که مثال دوم در بحث علم اجمالی چون در بحث علم اجمالی عده گفتن قصور ترکیسی در یک طرف جاری میشه بهشکال نداره. مخالفت قطعیه حرامه خب شما چرا در اونجا نمیگید واجب از محافظت موا... موا... قطعیه میگه اگر اونجا هم گفتیم اصل صلاحیت داره در یک از جاله بشه به خاطر اینکه که حکم امر در اصلاف علم اجمالی هم تعلیقی نه تنجیزی قصد ایشون دو قبض نسال تعلیقی میبنن که باید حکم تنجیزی اینجا روشن بشه یعنی میشه میگه ما ممکن است بگیم که علم اجمالی منجز هست مالم یعنی شارفی احدها پس میشه تنجید تعلیقی پس این دوتا با هم تنجید این اجمالی با ما نهندید یکی حجیت زن برای این حکومت و قدار بنابرای اینکه که به حکم عقل باشه در حرض امتدار در حرض مورد حکم عقل تعلیقی و تنجید اینم مراد مرغومه های محقق اراغی از تعلیقی اما اگر من قرارت دادم هم تعلیقی نه تنجیدویه و سبب تام نزد برای ایجاد دادی. سبب تام یعنی نیاز یک نفری دیگر شارع نداره. عقل دیگه تمام شد شارع به شرط هر پیدا کردی. این تلاویات دیگه تام و منتظر چیزی دیگه نداره. نه سبب تام برای به اصطلاح صرف اراده و ما شاء الله علیه الان دیگه اطاعت و اطیان آمد الان اطاعت و اطیان اول به تکمیل انجیزه پس یعنی چی مسئله قدامیه مسئله موتهوشه میگه قد که اولا باید شما به یک حکم فعلی باشه یم تا عقل کاری نمودیم هنگام این که این تمرین را انجام می دهیم. لحظه آن گوشت نیست ولی یکی از لحظاتی است که می از زمان. اون لحظه کافی نه. وقتی از آگاهی دور می اما خنده سرود می شد. خنده سرود باعث می شد. هستیم که لحظه نه. اگر رو شاره شارع بود در مقابل شعلی در مقابل تن تعلیلی. خب اینا فرق قطع با اماره همین محدد بود. اماره میاد خود دست میشینه. عزیز من میگن اگر اماره آمد خودش کشفش ناقصه این چون کشفش تامه تا قطعه از شما پیدا کردیم حکم عقل با شما که این حکم متعلق حکم عقل میاد که شما افاعت بکنون نه اون حکم اصلا حکم به منجه اما حکم به ایجاد و اثر تکلیف عظیب در من اثر, اثر, اثر جرد عظیب من اثر حکمه شما جا بجا دارید حکم عرض. این حکم هست این, این کتاب برداریم بخوند الگار رو باید با بکن این کتاب برداریم بخوند و ها تو کی نویشتی با این کتاب قدر زباید شما آقا این کتاب جا بیشی آقا اگه قلب به خاطر میشه اون کامپین تمام اداره این تحریک خاطر یه دیگه‌ای جمعت باشه شما وقتی دلوقتي که دلوقتي الان اجازه بدین وقتی تکلیف میزدار که بنده که مقابلم چای هست من می‌خوام چای رو بخورم این وقتی بحث تکلیف نداره چون تکلیف من اینجا ندارم احتمال طرح بحث در جایی که تکلیف باشه مثلا اینجا, اینجا اگر چیزی از اراده تکوینی صرفه عملی نمی‌تونه شما از بحث خارج میشه داریم اصرار اینکه به در بحث خارج مراد ایشان و مراد همشون حکم تنجیزی عقله نه حکم متعلم عقیق حکم تنجیزیه بیلیم که تو اگه تکیبیش فهمی شد شما سرف ارادت بکن عمل هم درش نیاز هم که متعلم <تصفيق> یک حکم خود فعیلی داریم به تکلیف داریم یک حکم عقل داریم حکم عقل هست اینطوریه اول اولا ترک اراده رو بعد میگه اگر موانع منتقی شد و مزامون اینا نشد انجام بده اون نسبت به متعلقش به این معنا تنجیز متعلق به این معنا یعنی عقل حکم تنجیزی داره که تو این کار فرق اراده نسا بیمتعلق این حکم عقلی تنجیزیه این حکم عقلی تنجیزیه اما در واقع حکیت زن عقل اصداد عقل به حکیت زن حکیت میده اون به شک که شاره نمی نکنه اون تعلیقیه فرق بین منجزیت ترت و بین منجزیت علم اجمالی هم همینه در علم اجمالی هم تعلیقیه البته این روی مبنایی کسایی که مثل شیف و اولا خود آرزی هم حکمه در باقی علم اجمالی هم اونجا هم تنجیبی می‌دونه. برام آرزی روی اینجا بعد مثال میزنه اما این روی مسلک دیگر هم چه ایشون علم اجمالی رو دقیقا همون علم تفصیلی میدونن بله. و بله. اولا بله ایشون علم اجمالی رو مدل ذیاتی که همون منجزیت علم تفصیلی میشه شامل با فندار مشابهش درポジ کاملیه زنجین برای اینطور آغازی‌ها واجبه ترتیبه اگه اشتباه نکنند مرجعی که به قصور اراده می‌بونه چرا؟ مرژه شنگیه اراده علا کنه حاله تعلق پیدا نکرده به این طرف نه به ذهنان این طور ایشون تفصیل که از واجب تخیری دارن علا ما به بالی چون بعضی ها واجب تخیری ارجام یک نوع واجب شرکی میدن مثل آر خویی ارجام میدن یک نوع واجب تخیری عقلی هستن ما از کاریم تخیری عقلی با شرکی فهم میکنم تخیری قانونی هستن آزیان بخصه اراده رفته. بیشتر نظر واجب الا ما به باله چون میگم یه مدته میگم ما روی نسبته رو خیلی خراب در این که خراب در اراده رو در مسئول واجب تحقیق و تفسیر ایشان اراده قاصره اراده تام نیست یعنی اراده تام در واجب تعیین نیست مثلا نماز بکن اما اگر یا این کار یا اون کار یا اون کار بکن اراده هست اما اراده ها قاصره هستند یعنی این کار بکن اگر میخوام از تو اگر اون دو کار انجام ندادی، اینجوری میشه اما نماز کنند رو مطلقه میخواد اون اراده تامه به تحبیر ایشان ارازه سرویتش تامه اینجور سرویتش نامه ایشون من ارجاع میگه. واجب تخلیبی به اینو قصور یعنی اراده مشروط میشه من از تو اطقه رقبی میخوام اراده کردن اما اگر اون دو طرح اگر اگر اما نماز نگفت اگر اون اراده تشریعی که تعلق پیدا کرده به نماز اون اراده تشریعی هیچ نوع تعلیق توش نداره تامه. یعنی اون رو قرار ماطی تمام باشه. گفت طبیه متصاول ارکان تو در خودش هست. فاز قدرت جماعیه. و انشاء الله در نه از مسئله که من تقریب کلمات خیلی لطیف بود نه انساقه حدییت رو زدیم به قراز ازنا و مشکل حلش کردیم حال مشکل کردش شد این قراز ازنا خای در قراز از اقسام مؤثره حدییت رو مولا برای چی؟ یکتر جنیسی یعنی می تو اراده یعنی قرار دردنا یا زنده معتبر چیه احتجاج به چی احتجاج این که تنجاز شد حاصل احتجاج ام چیه میگه قرار حاصل نشد مولا میگه تنجج حاصل شد تنجز این قرض ادناست <متحن> نمیبینی <متحن> که صورت قرضه دانستی یعنی چی یعنی اون قرضه ادنا تنجج حاصل شد تنجز اون صورت ذهنی تأثیر اون صورت ذهنی هم در قرضه ادناست هم تو قرضه افساست نه بحث باید و نباید این باید و نباید می این باید و نباید این و این باید و نباید می دونم این باید و نباید می دونم باید همین که تو صورت ذهنی پیدا کرده این قرار زدنا چون بعد از اون تکیل ده میدونم و اون وقت ما اینجا حرفمون اینه که مکلب اگر آمد و گفت من قرار پیدا کردن ممکن است قانون این اکتفا نکنه ممکنه اینو بوخت دارید می اراده دالجر اراده می‌کنه اون که دو تا اما که سبب تنفس نفسه اینا نیست که جایی همون تنسو دیتون. تنسو دیتون همون دایی اسمش تنجز جلد. یعنی به مجدد انتباع صورت اون صورتی که از نظر قانونی قابل قبوله این تنجز میاد و همین تنجز ایجاد دایی خودشه از سبب احتجاجم خودشه وقتی میگه خود داشتن تنجز پیدا کرد یعنی من بر من دایی بود یا تنجز نشد دایی نبود که اونی که از نه اراده اراده قهری صرف قرعه اراده هر به کلام عادیا بود من بنده حرفت این بود که تنجز به مجرد علم یا به مجرد سریعی رو شاره معتبر کرده پیدا میشه این تنجز عبارتون اخرای از قراز ادناس تنجز عبارتون اخرای از قراز ادناس مرحله بعدی قراز اخسام با تحقق پیدا کنه ما میگیم حجییتی رو که ازش بحث میکنیم اون قراز ادناس آن داری خوششون می‌بافند، موج موجی می‌آید، موج موجی می‌آید، اینی که می‌دونیش که از